بسم الله الرحمن الرحیم علامات رف خوانده شد چهار تا بودند علامات نسب خوانده شد پنج تا بودند علامات جر خونده شد سه تا بودند و رسیدیم به علامتهای جزم که دوتا هستند ولی علامتان جزم دو علامت دارد السکون و الحسف سکون و حذف حالا می که این سکون چه جای علامت جزم و حذف چه جایی علامت جزم هست فَأَمَّا سکون، فَيَكُونُ عَلَامَةً لِلْجَزْمِ فِي الْفِعْلِ الْمُبَارِعِ الصَّحِيحِ الصحيح می که سکون علامت جزم هست در فعل مزاریک صحیح آخر باشد بسی یعنی یک توبو آخرش حرف عله نباشد حرف عله ستا هستند واب الف یا یدعو یرمی یخشا اینا ناقصند اینا متلل آخرند ولی جز از اینها یعنی کلماتی که آخرشون واب و الف یا نیست آخرین لام اونا صحیح و می فرماید که سکون علامت جزم هست در فعل مزارع صحیح الاخر در فعل مزارع که صحیح الاخر که البته به آخرش چیزی نچسبیده باشد مثل ینسرو، تنسرو، انسرو، ننسرو این سیغه ها هرگاه مجزوم شدن سکون می گیدن لم لم انصر لم ننصر لم تنصر بقیه سیغه ها اگر یا باشد با حذف که در جلوتر توضیح میده مذم میشن خب اینو خوندیم و اما الحذف الی رو این نقطه رو بدونید که علامت های جزم گفته بود سکون و حذف هر دو تا مخصوص فعل مضارع اند چون اسم ها مجزوم نمیشن فعل موازی که مبنی هست عمر که مبنی هست فقط باقی میوند چی؟ مزاره پس جزم دو علامت داره سکون هست. این سکون هم مخصوص فعل مزاره هست و حذف هم مخصوص فعل مزاره است. ولی حالا چه سیغایی توضیح میده پس سکون علامت جزم فعل مزاره صحیح و بود زمانی که به آخرش چیزی نتسبیده بود و اما الحذفو فيكون علامه للجزم في فعل المضارع المعتل آخر. اما حذف ما دو تا حذف داريم یا حذف نون يا حذف حرف عله یا حذف نون یا حذف حرف این دوری هم میتونست مطرح کره ولی این اینش بلیغتره که این کتاب مطرح کرده سکون و حذف میتونست بگه علامتهای جزم سکون حذف نون حذف حرف عله ولی اینش بلیغتره که این کتاب مطرح کرده خب و اما الحرف، فیکول علامت الجزم في فی الفعل المباری المعتلل آخر حسف، علامت الجاسم هست در فعل معتلل آخر حسف میکنی؟ از معتلل آخر کی رو حسف میکنی؟ هر فعل رو از آخر حسف میکنی؟ مثلا یاددعو میگیم لام یاددعو زمی آخرش. جواب حس شد. یارمی میشه لام یارمی. یا خشای میشه لام یا خشای. هر فعل چی شد؟ خصف شد پس حش در چه کلاماتی در چه فعل مزارهی علامت جزم هست در فعل خصف حرف علیه در فعل مزاره مطلل آخر در کدوم هاش اون هاش که زمیری بهش نچسبیده یدعو تدعو ادعو ندعو اما اون فعلایی فعل که رفعش با ثبوت نون بود اونجا دیگه با حس نون بچون میشه و فی الافعال الخمسه کلتی رفعها به ثبوت نون به ثبوت بسب بسب نون میگه حصف علامت جزم هست در افعال خمسه ای که رفعشان با ثبوت نون بود حال چه مطل باشه چه مطل نباشه ینسرانی تنسرانی ینسرونه تنسرونه تنسرینه ایرها هرگاه مجزوم شدن علامت جزم حصفه حصف نونه لن؟ تنسورا لام چه لم تنسورا لام تنسرو لام تنسوری و همچنین در مطلعات یدعو یدعوانی يدعو حالا اگر یدعوانی مجلوم شد میشه لم یدعوانی چی میشه؟ حسب میشه پس حسب علامت جزم هست در حیل مزارعه موتلل آخر و همچنین در فعل مزارعی که رفعش با ثبوت نون بود رفعش با چی بود؟